افسونه افسانه به نام خدا و سلام عزیزان از قدیمیترین ایام از وقتی که مادر و مادر بزرگ یا پیر سالخورده ای در جهان بوده افسانه هم بوده و به همین خاطر گفته میشه عمر افسانه به اندازه عمر آدمیه آدمی افسانه و قصه رو دوست داره و با اون زندگی میکنه افسانه ها و قصه ها جاذبه ای دارن که آدمی رو به طرف خودشون میکشونن. یاران همدل، این هفته افسانه ای از سرزمین ترکستان در آسیای مرکزی قدیم تقدیمتون میکنیم به نام افسانه پادشاه نادان برگرفته از کتاب افسانه های ترکستان به قلم ناصر پورپیرار و برزین آزرمهر. امیدواریم لحظات شیرینی و با شنیدن این افسانه زیبا سپری کنید. قبل در سرزمین ترکستان در آسیای مرکزی قدیم مرد توهیدستی زندگی میکرد که از مال دنیا تنها یک کلبه حسیری داشت روزی بر اثر بارش شدید بارون سقف کلبه مرد توهیدست فرورید آ او حالا با این او او او کنم او او او او ریز داره او خدایا خودت میدونی که من از او دنیا فقط همین او او او او او او او او او او او ریخته تا صبح اینجا پر از آب او او او اگه بله دوستان مرد توحیده است اون شب مختصر وسایلش وسایلشو یه گوشهی جمع کرد تا صبح منتظر بند اومدن بارون بمونه فردا اول وقت برای تعمیر سقف فرو ریخته ی خونش فورا به سراغ مرد بنایی رفت و از اون خواست تا سقف خونشو تعمیر کنه فردای اون روز مرد بنا به خونه مرد مرد دست اومد و مشغول تعمیر سقف خونه شد <تصفح> سقف خونه بد توری ریخته ولی نگران نباش من کارم خوب بلدم تا یه ساعت دیگه کارم تموم میشه و میتونی تمام زنسون با خیال راحت زیر این سقف شینیم و... دست نگه دارم دست نگه دارم ولی هنوز نصف سخف مونده میدونم ولی ولی چی؟ ببینم نکن از کار من راضی نیستی ها نه, نه نه نه نه من تو چی؟ اگه نمیخوای سخف محکمی ولی سرت باشم ها؟ البته که میخوام ولی ولی چی؟ راستش راستش من پول کافی برای ادامه کار نداره پول کافی نداری؟ تو که پول کافی نداشتی چرا منو کشم؟ کشون... ما میدونم میدونم میدونم ولی من مجبور بودم میبینی که زمستون داره از راه میرسه و توی خونه بی سقف هم نمیشه کرد. حالا من باید چی کار کنم ها؟ تو دارم. لاقل یه قسمتی از سقف خونه رو با حسیر بپشون بقیه اونو وقتی پول دار شدم بیا و تعمیر کن. بنا که هنوز کمی عصبانی بود، تند و تند روی حسیرهای سقف مقداری خاک ریخت و مزد کمی گرفت و از خونه مرد توحیده است بیرون اومد. چند روزی از این ماجرا گذشت و مرد توحیده است با همون سقف نیمه کاره شده روزگار رو گذرند تا اینکه یه روز دوستی که بسیار هم همهرفهی بود از حوالی خونه مرد توهیده است میگذشت چشمش به خونه نوساز نیمه کاره مرد توهیده است افتاد وارجب خونهی لابوت ساوه خونه مرد سرورتوندیه که همچین خونهی سخت باید هر طور شده یه به اونجا بزنم حتما وسیل گرون قیمتی هم اون توه. آره حتما هم اینطوره چه نخشی باید بکشم احا میرم اونطوری بعد اینطوری بعدم اونطوری بعد از بالا یافتم یافتم بله دوستان دوست از تاریکی شب استفاده کرد و به خونه مرد توحیده است نزدیک شد چند ساعتی و در گوشه ای به انتظار نشست و بالاخره چراغ خونه مرد توحیده است خاموش شد و اون به خواب رفت نیمه های شب دوست آروم و با احتیاط خودشو به بالای پشت بام حسیری خونه رسوند اما از اونجایی که سقف نیمه کاره بود، در یک چشم به هم زدن سقف خراب شد و خاک زیر پای دوست فرو ریخت و دوست از اون بالا با صدای مهیبی به پایین درست روی سر مرد توحیده است که در خواب بود، سقوط کرد تو این اینجا میکنی؟ رفیق من یه را اینجا تو خونه من رفیق اومدم یه حالی ازت بپرسم کمی کسری چیزی نداری؟ من که گفتم که یه رح گذرم الان از اینجا میرم اخ ببین ببین دارم میرم اخ. تو هم بگیر با خیال بخواب من رفتم رفید رفتم توحیده است که هنوز وحشت زده بود گیج و مبهوت به سقف فرو ریختش نگاهی انداخت و سکوت کرد دوست هم که چیزی برای دست برد پیدا نکرده بود و به قول معروف به کاهدون زده بود با ناامیدی و دست خالی از خونه مرد توحیده است بیرون اومد و در تاریکی شب گم شد فردای اون روز دوست با عصبانیت خودشو به دربار پادشاه رساند و با قیافه حق به جانبی جلو رفت و چنان آه و ناله کرد و سر و صدایی راه انداخت که ناگو ناپورس جناب پادشاه جناب پادشاه به دادم برسید ظلم ظلم در حق من ظلم شده آهای یکی به دادم من برسه داد منو بگیرید یکی به دادم من برسه این سر و صدا چیه ب... چه خبره قربان قربان به دادم برسید یکی مردکو نزد من بیاره نه املور ولی نه، بیاره. آبا... آبا... آ... آ... دا... با... ببینم تو چیستی اینجا چی کار داری؟ قربان من مظلومی هستم که در حقم ظلم شده زول؟ چه ظلمی؟ جناب پادشاه من من از دزدان حرفه ای این شهرم و به خونه شخصی رفتم تا چیزی بدوزدم ولی اون شخص خونه محکمی نساخته بود و سقفش فرو و من پیچاره از اون بالا به پایین سقوط کردم الان تمام <تصال> <تص بدم درد می خرم <تصالح> آی دستم کبره با پا پام پام پام با پا پا دنده ها قربان <تصالح> مولایزه بفرمایید سرم سرم ببینید شکسته آه دست شکسته دندام خورد و خمیری شده اصلا همه بدنم شکسته قربان همش تقصیر اون صابخونه است که من بهینو زفت دادم آی دستم با پام مرد مالا آی چی بخویا چی خوب بگو ببینم حالا من با باید چه کار کنم قربان! شما آروم. که پادشاه عادلی هستید باید صاحب اون خونه رو مجازات کنید آه. بی احتیاطی اون منو به این روز انداخته ناسلامتیم از دوزدان هرفه این شهرم و برا خودم اسم و رسمی دارم قربان. آه دوزده هرفه این شهرم سیما اسم رسمی داری. آه. وزیر آه. بسی. بله قربان. ببین اینجا ببینم. در خدمت. فوراً اون صاحب خونه بی احتیاطو بزور کنید. اون باید به سزای عملش برسه. نرسید؟ باید برسه، برسه. شو تون بله دوستان وزیر دستور داد طبق فرمان پادشاه مرد توهیدست و به دربار بیارن و سربازان پادشاه هم در عرض چند دقیقه مرد توهیدست و کشون کشون در حالی که گیج و منگ بود و نمیدونست بابت چه خطایی اونو به حضور پادشاه احضار کردن در مقابل پادشاه و دوست است. بیا جلوتر ببینم. بله قربان. بله. بیا بیا بیا. به این مرد خوب نگاه کن. این مردو میشناسی؟ قربان، قیافش برام یه کمی آشناسی. یه کمی. من همون راهکوشا هم یادت شما؟ خوب دقت کن. این همون مردی نیست که دیشب از پشت بام خونه تو افتاده؟ بله، بله، غربان، بله، بله، خودشه خودشه اون دیشب قصد دستم برد به خونه ای منو داشت آه. و روی سر من نیفتاده بود حتما تمام بدنش خرد و آش و لش میشه آه، الانم آش و لشم بای کمرم، بای سرم، بای سرم، آخپام، دنده هم، خرد آه، اینقدر آهوناله نکن بدم میاد جناب پادشا بله از پادشای عادلی مثل شما انتظار میره که این دوزدم اجازت کن قربان منم از پادشای عادلی مثل شما تغازه دارم ادالت در مورد من اجرا کنید و نذارید حق من به عنوان یکی از دوزدان حرفی این شهر پایمال بشه بله بله البته میدانم یایی این مرد که توهی دست رو به دار بکشید کی کی, کی من من قربان من, آه. آه. آه. آه. من آه. آه. که گناهی نگرد آئی دستم پام کمرم آه. سرم دردام قربان تقاس منو از این مرد بگیرید دارش بزنید چلی خب ما خودمان هم, هم همین کار رو میکنیم همین فکر رو هم داریم دار دار دار دار, دار دارش بزنید قربان قربان چرا شما این مرد دوزده بعد قباره باید به دار بکشید خب اینا برو؟ بینبارو مردک دیوانه آموش. برای من تعین تکلیف میکنی نه نه نه این قربان من کی باشم که برای شما اینجا امر امر منه <تصفيق> البته قربان امر امر شما بله پس قبول داری که امر منه بله بله بل بل قبول دارم, بل دارم که این مرد قصد دست برد خونه منو داشته و اینجا مردک نه منظوری اینی که قبول داری تو اسباب آزار این دوزد شریف حرفه‌ای شدی؟ بله قبول داری؟ نداری؟ داری؟ نداری؟ داری؟ قربان قربان من من کاش آزارو کسی ندارم. من مرد توحیدستی هستم که پول کافی برای پوشوندن کامل سقف خونم نداشتم. خب قربان استدعا دارم منو عفو کنید. من اینو مثلا میگنو. خاموش. قربان مقصر اصلی کسی دیگیه. جسارتان جسارتان شما به اونم جسارت ببینم Yeah. <laughs> قضیه داره پیچ در پیچ میشه نمیشه میشه اینش قربان که گفتم مخصر کس دیگه این کس دیگه خب بگو ببینم اون کیه زوتون سری قربان همش تقصیر مرد بناست مرد بنا همون که خونه ای منو اینطور سست ساخت باعث شد این مرد این دزد وقاحت کرد بیچاره شریف اینجوری هاشو laisse چه ورای پوزرا می میره دستت دستت خونده خموش خاموش. من از آهاناله بدم میاد نمیاد میاد مقصر اصلی مرد بناست وگر من که گناهی ندارم درسته؟ کاملا درسته مقصر اصلی اونه چنان زودتر به فکر خودم نرسید رسید؟ نه نرسید رسید رسید رسید فوراً مرد بنا رو بیارین زود تون سریعی؟ دستور پادشاه سربازان دربار در عرض چند دقیقه مرد بنا رو کشون کشون به حضور پادشاه آوردن مرد بنا که از همه جا بیخبر بود و از شدت ترس رنگ به صورت نداشت یریس التماس میکرد قربان من خطایی نگردم هیچ خطایی از من سر نزده باور کنید من از چیزی خبر ندارم من حتما اشتباهی پیش اومده من رحم کنید قربان خواهش می‌کنم من, من کاری نکردم، من بیگناهم من من حقیقت رو نگردم حقیق تمنا می‌کنم قربان من خطایی ندارم. سرام چه خبرته من اه کاری نکردم من بیکنم من کاری بی نکردم من بیکنم بخورم بی که صارتا کنم اه اه که بدون شک منو اشتوایی به اینجا آوردن ببینم مردک مگر اه اه تو بنا نیستی ها هستی نیستی هستی بب... بله قلبان من سال که بنا هستم یا خب تو مطمئنی که جرمی مرتکب نشدی شدی نشدی شدی, شدی؟ بب... بله قلبان من مطمئنم که هیچ, هیچ خالی نکردم اه <تصفيق> اه ولی تو مرتکب جرمی شدی و خودت خبر نداری خودت خبر نداری دروغ نگو مردکه ابله قربان من مردکه مردک چه چه جرمی مردکیب شدم که خودم خبر ندارم قربان جرمی که قابله انکار نیست شاهدشم این مرد توهیدسته قربان من من, من ازا سردر نمیارم جریان چیه قربان آهای آه وزیر آه، نمیخواد بیای. خیر سرت هرگاه صداحت زدیم نیستی. ولی ماجرا رو برای این مردک بنا تعریف کن. بیا بگو برایش. شاید یادش بیاد که چه جرمی مرتکب شده. تمام ماجرا رو مو به مو برای مرد بنا تعریف کرد مرد بنا وقتی متوجه ماجرا شد با خوشحالی فکری به سرش رسید به قربان دیدید دیدید من بیگناهم بیگناه بیگناه, بیگناه آموش ب... میگی بیگناهی ببینم مگه تو چند روز پیش سقف خونه این مرد رو تعمیر نکردی ها؟ ولی بله قربان من این کارو انجام دادم خب همین اعتراف تو کافیه کار تمومه آهای اه فوراً این مرد رو به دار بکشین زود تون سریم به من رحم کنید من کار خطایی نگردم خوربان. مردک تو چرا کار تو درست انجام ندادی دادی ندادی کدوم کار کار کدوم. سخف و میگم مردک بیهنر تو باعث آزار و اذیت یکی از حرفی ترین دزدان این شهر شدی نشدی شدی خب خو خو من من بازم... تو باید برای گناهی که مرتکب شدی مجازات بشی نشی باید بشی نبود به قبله من بی گناهم بی گناهم یعنی غربان. تو در تشخیص جرم و عدالت من شک داری نه نه نه نه قربان من چنین جزالتی رو نکردم شما عادل ترین پادشاهی هستی که من تا روها دیدم ولی با باور کنید من بی اما این تو بودی که اون سخف و سست و ناستوار ساختی نساختی ساختی درسته قربان من ساخ ولی همه ای تقصیره گردن مرد حسیر بافه. اون بود که پاسش. صاب کن ببینم. صاب کن باف. اون دیگه این وسط چی کار است؟ غربان اگه اون حسیر گشاد و سست نبفته بود و تو کارش محکم کاری میکرد هیچ وقت هیچ وقت اون دزد شریف رئیس آدم نمیدید بله غربان بله مقصره از این مرد حسیر با وی نم منه بیلوائزم خاموش, اه خاموش. اه ده ده ده. هر دو خاموش بذارید فکر کنم به دستور پادشاه ساعتی بعد حسیر باف که مردی لاغر و استخانی بود به حضور پادشاه رسید. مرد بی هاج و واج بود و نمی‌دونست برای چی اونو به نزد پادشاه آوردن پادشاه با قدم های بلند به اون نزدیک شد مرد با آیا تو چند روز پیش حسیر سقف خونه این مرد توحیده است و نبافتی؟ ها؟ نبافتی؟ بافتی؟ بله قربان من بافتم من در کارم مهارت خاصی دارم و سال هاست که به این آه. کار مشغولم شما لطف دارید قربان من یکی از زبده خمد. ترین و با تجربه خمد. ترین حسیر بافان این شخص خانوش چه از خودشم تعریف میکنه مردک بیانر؟ در قدمتم قربان ام. عرض کردم آه. در هسیر بافی بنده بند مهارت دارم و همه توی شهر منو مشناسن و هنرم تعریف میکنن من تجربه و... دار, دار دار دار دار دار دارش بزنید همه یه گناه ها بگردن اینه قربه کنید زود تون سری. مرد باف با حیرت و شگفتی سرشو به این طرف و اون طرف چرخوند و چشمای متعجبش گرد شد با اشاره و دستور پادشاه سربازان دربار به مرد باف هجوم آوردن و قصد داشتن اونو در حالی که مقاومت میکرد کشون کشون به بیرون برده و به دار بکشند مرد حسیر باف با التماس فریاد میزد صبر کنید، صبر کنید بذارید حرفم را بزنم قربان، قربان شما پادشاه عادلی است. من مقصر نیستم گناهکار کس دیگه ایه. سا ببینم کس دیگه؟ آره. بسیار خب مرده که بی هنر بگو ببینم اون گناهکار اصلی که معرفیش کن خقا، بگو خقا، بگو نگو بگو قبله عالم، ای خدا خدا خدا بگو. پادشاه دادگر ام. ای سلطان ادادگر بس ای... کن که... این قبله عالم و سلطان و پادشاه و این رو؟ کلم بگیر زود تون سری بگو ببینم مقصره اصلی کی ها قا قا قا قا قا قد قد نکون حرف بزن قصهای که من می بفهم همیشه محکم بودن ام. ولی ولی آجا... قربان اون روز اون روز <تصفيق> خب اون بگو، بگو، بگو، زودتون سری بگو قربان، قربان وقتی مشغول بافته این حسیر بودم حواسم متوجه کفترهای خونه همسایه بود صدای اونها حواست منو پرت کرد تا به همین خاطر اون حسیر سست از آب در اون قربان، قربان حالا دیدین مقصر اصلی مرد کفتر بازه نمنه، هنرمند بینبا آخش آخش مرد کفترباز رو فوراً به دربار بیارین آنش. تا به سزای عملش برسیم ادالت اجرا بجیم قربانت کردم قربان پاچا همچنان در اتاق در حال قدم زدن بود و انتظار اومدن مرد کفترباز رو میکشید. لحظه ای بعد سربازان پادشاه مرد جوان کفترباز بازو به دربار آوردن. پادشاه با دیدن مرد کفترباز باز به افتاد <تصفيق> این مردک چه دماغ تیزی داره درست مثل کفتر نکشون <تصفيق> ببینم مردک از اول دماغت همین شکلی بود <تصفيق> یا از بس کفتر بازی کردی کمال همنشین در تو اثر کرد دماغ دار دار دارش بزنید تو تو سریع من به چه جرمی من که خطایی نکرد <تصفيق> جرم تو مردک دماغ کفتری اه... کردن حواسی دیگه بر بر من حواسی کیو کرده باقی؟ کی منو از منو نمیشناسی؟ من منم حسیرباف ماهر هنرمنده این شان خب، خب، خب، خب، با ماهر هنرمند میشه بگی من چجوری حواسی شما رو کردم؟ من که تا الان از تو رو ندیدم، چجوری حواسی تو رو برد کردم؟ خاموش، جرد جرد خیلی خوب بریم سر اصل مطلب <متقلع> بله کفترهای تو با صدای حواسه این مرد حسیر و پرد کردن و با باعث شدن اون نتونه حسیرهای محکم به بافه کم. حالا؟ باید تاوان بقبقوهای bugsو های تو بدی، اونم چه جور؟ چه چه جور؟ دار! دار! دارش دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! بله دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! دار! باب چی آید میشه؟ ادم اه... چی آید میشه؟ مثلا آره... میشه نمیشه آیدان قولوند جسارتا شما شما, شما جم... بعد اون مرد دوز دو به دار بکشید نه دیگرونو اینجوری درد سر به وجود نمیاد مردم دست اون دوز حرفیام راحت میشن اوکی آه... اینطور؟ فالل بسی بسی هستی یا نه بسیر بسیر هستی یا نیستی اگر هستی بیا جلو ببینم بله جناب پادشاه آه چه جمعه بودی وزیر <تصفيق> تو چه نظری داری اصلا داری؟ نداری؟ اگه داری بقو. آیا این جوان کفتر باز گناهکاره؟ گناه کاره جواب بده جواب بده قربان ام. اگه جسارت نباشه به نظر من این جوان بی گناهکار گناه اصلی خود این مرد دوزده دو دو دوزده ای گروه بیا، بفکرم من یه اون تویشت با اسم و رسد دوستی کردم آلا آی کمرم آی دست خاموش مرده که من، به عنوان پادشاه از اولشم میدونستم مقصره اصلی، خودت هستی دار بله دوستان پادشاه دستور داد مرد توحید است مرد بنا مرد حسیر باف و جوان کفدار بازو و مرخص کنند و تنها مرد دوست و نگه دارند مرد دوست که دید اوضاع خیلی خرابه به دست و پای پادشاه افتاد و شروع کرد به خواهش و التماس ولی پادشاه بدون توجه به التماس های اون دستور داد دوزد و پای چوبه دار ببرن و کارو تمام کنن سربازان دربار هم دو و کشون کشون تا پای چوبه دار بردن اما از اونجای که چوبه دار کوتاه بود و دوزد قد درغازی داشت پاهای اون به زمین می رسید یکی از سربازان پادشاه برای تعیین تکلیف که چطور دزد و بدار بکشن به نست پادشاه رفت قبله یالم جسارتا هر کاری میکنیم نمیتونیم مرد دزد و دار بزنیم برگان مشکلی وجود داره چه مشکلی؟ قد پاهای اون درازه رو به زمین میرسه ما نمیدونیم چطوری اونو دار بزن ای ابله های بیعقل این که کاری نداره من نمیدونم دونم که باید جواب بیعقلی های اینها رو بدم ندم بدم گربان جسارت و کم اوله همش تخصیل پاهای دراز اونه خیلی خوب و البته شما ابله های بیعقل بله بله شما درست می‌فرمید ما ابله بیعقلیم بله فوراً برید و کسی رو پیدا کنید که پاهاش کوتاتر باشه و اون رو به جای اون دو زهرفهی دار بزنید نزنید؟ نه بزنید, بزنید. اطوات گروه از این حرف پادشاه تعجب کرد و در دلش به نادونی اون خندید ولی خب چاره ای جز اطاعت فرمان پادشاه نداشت و فوراً به کوچه رفت و به اولین کسی که در حال عبور از اون حوالی بود فرمان ایست داد مرد ریزنقشی که کیسهای بر دوش داشت ایستاد و آروم کیسه رو بر زمین گذاشت نگاهی به اطراف انداخت و وقتی سربازان دربارو دید با ترس و لرس گفت آه چی؟ چی شده؟ ما، ما، با, ما، با من چکار دارین؟ تو باید با ما بیاییم و شما بیایم من که کار نکردم کجا بیاییم؟ جناب پادشاه تو رو به سر کرده چی؟ زود باش،, باش معتل نکن، رابی افت ولی، ولی، باچه با من چیکار داری؟ به من رب کنی، باور کنی، کیسه مال خودمه، اون هم اونا کسی ندازده جالا، زود باش، رابی افت بابا جال، بابر... من باور من با آقا بیرم کنی رابی افت با من کاری نکن، من می هممال بی نباه که اصبح چرا میزنی؟ یاران حمدل سربازان پادشاه حمال ریز نقش و با سرنیزه به جلو هل دادند مرد حمال که حاج و واج بود و نمیدونست چه خطایی مرتکب شده و چرا باید پادشاه اونو احضار کنه مدام التماس میکرد و سعی داشت بیگناهی خودشو اثبات کنه اما سربازان پادشاه گوششون به این حرفا به دهکار نبود و هممال بیچاره رو کشون کشون به نزد پادشاه آوردن. مرد هممال همین که به دربار رسید و چشمش به پادشاه افتاد فوراً به طرف اون دوید و لبه قبای زریدوزی پادشاه رو گرفت و شروع کرد به التماس کردم. کودو کودو کودو من ایش کارچوی نکاتم کودو کودو من ایش کارچوی نکاتم کودو کودو من ایش کارچوی نکاتم برو اگم ببینم. تاش تاش آه تاش تاش تاش تاش برو من یه هم مالی بی نامم کارشی بته یه لغمه نیم حاله هم مالی میکنم شکم زان باچوی کارنیم کارم مسیر میکنم این کارم کجور میس حس نی نخی نیست منو جرم تو چیز دیگه ایه ام. قربان معذرت میخوام جسارت بیعدبی نباشی چیزی؟ چیز؟ چیزی که تو باید به خاطر اون به دار کشیده بشی اه. نشی؟ باید بشی یار، یار. ولی قربان اه. به چه جوری می؟ قربان به سر مبارک قسم من بی گناه. قربان بشیم سر... که اب نگو بی هم بیگناه. گناهم بی گناه. موضوع بی و گناهکاری نیست ما باید عدالت رو اجرا کنیم قربا من خیلی کاملا دربست با اجرای عدالت موافقم اما من که ببین نه. مرده که پاکوتا جان امروز باید یک نفر به دار کشیده بشه نشه بشه آره آره باید یه کسی حلقاویز بشه تا ادالت برقرار بشه نشه, نشه. بشه نشه. بشه و فا... بشه من کاله برقراری خور... خب مجرم اصلی را بجور بکشین نه من مانه علیل جالیل دست بزنیم میمیرم که تنها نم نم نم اگر بچه گدونی هقیف بر... من میدونم مجرم اصلی اون دو ذه:hrefهیه و اون حقشه بشه که بدار کشیده بشه نشه باید بشه اما آه. چه کنیم که قد اون درازه درازه درازه آه. اون یه دراز بی قوار است که پاهاش به زمین میرسه و نمیشه اونو به دار کشید خوب... ولی تو پاهای کوتاهی داری و به درد این کار میخوری و به راحتی میشه دارت زد و ادالت تو اجرا کرد بقول اون درازه به من چه بابا آخه خب این چه کار این چه کاری آسونه شما دیگه چرا خب چاره این کار چیه ها بگو بگو تونسو زود سریع. بگم آره. بگم آره بگو. همه بگم بگو خوربان چورش یه کم زیر داره گوت کنین تا پاهای اون مردک دوست تو هوا محلق بمونه <تصفيق> اینجوری هم عدالت اجرام میشه هم مان بی گناه به دار کشین نمیشم و نه فرزنده های بی پدر میشن خیلی خوب آه آه مثل اینگه این مردک با این پاهای کوتاهش عقل بلندی داره نه دوه داره دیگه فشنه دیم من دارم با خودم فک دستور داد یک بار دیگه دوستو برای بهدار کشیدن آماده کنند. دوست که دید این دفعه مرگش حتمیه فکری به نظرش رسید و فورا به سربازانی که به کندن گودال مشغول بودند نزدیک شد زود باشین زود باشین چاله رو آماده کین. یالا منم زود چار دار بزنین. خدایا شد چه به نخره. شانس به امروز کره. زود باشی منو دار بزنید امروز بهترین روز زندگی منه. عجب شانس بلندی دارم من. زود باشین منو دار بزنید وقت تنگه. آی ساکو، ساکو، تاقیم ببینیم. چی شده که برای مردن عجله داری ها؟ نداری؟ داری. چی شد اون آخ داستان با همارم بایی سلام و این حرفا چی شد؟ قربان مگه خبر نداری؟ نه؟ خوی هایا شکره چه خبر خوبیه؟ مم. سود باشید من باید هرچی سود در به دار کشیده بشم یا الله سود باشی. مردک میگی چی شده یا؟ قربان همین چند سطح پیس بی سلطان بهش از دنیا رفت و عمرشو داد بشید قربان رفت به من چرا رفتی داره؟ این خوشحالی داره؟ قربان آره اول وصیت که ربنا کسی که بعد از من از دنیا بره به جای من سلطان بهشت زود باشه منو دار بزنید زود باشی میخوام سلطان بهشتم زود باشه کارو تمام کنه زود باش دیگه منو بکشید بکشین بالا خواهش می کنم منو القاویس کنید زود تر منو بکشین میخوام سلطان بهشت دست نگهداری. بکش خاموش، خاموش چورن بیایید و منو به جای این مردکه که دو فیدار بزنید جود باشید، زود تو سریعی بربان اجازه بدیم، من سلطان بهش باشم، خواهش بکرم خاموش مردکه که تمکار زیاده خواه این حق منه که سلطان بهش باشم، نه توی بی سر و پای دراز. آه. سربازانه ابله چرا ما منو دار بزنید بلده زود سری دار بزنید ولی قربان ما چجوری شما رو دار بزنید؟ همون طوری که میخواستید این مدکه دار بزنید آه. آه. بله قربان آخر اون دوست دو شما پادش خاموش باشید من میخوام سلطان بهشت بشم هم نه من باید بشم زود باشید من دستور بیدم. هر هرچه زودتر منو به دار بکشید همین که گفتم همین ولی بله دوستان، سربازان هم دستور پادشاه و اطاعت کردن و تناب دار و بگردن پادشاه نادان آویختند و چند لحظه بعد پاهای پادشاه در هوا معلق موند و این تنها فرمان پادشاه نادان بود که بدون معطلی اجرا شد افسانه عزیز، افثانه پادشاه نادانو از سرزمین ترکستان در آسیای مرکزی قدیم به قلم ناصر پرپیرار و برزین آزرمهر شنیدید افسانه ها باستا به زندگی مردم هر سرزمینند و روابط انسان و روش برخوردشونو با همدیگه تجزیه و تحلیل میکنند افسانه پادشاه نادان تنظیم برای رادیو زینت پور راوی محروخ افضلی بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی علی اصغر دریایی میر طاهر مزلومی ایوب آقاخانی امیر زنده دلان و با بازی و کارگردانی بهرام سرور نژاد افکتور محمد رزا قبادیفر صدابردار حیدر سفتری تهیه کننده زهرا عبدالله افزاده افزانه ها رنگی از زندگی هست زندگیتون دلشیین و مادا تا افسان دیگر بتروت.